خوش آمد گل وزن خوشتر نباشد که در دستت به ساغر نباشد زمان خوشدلی در یاب و دور یاب که دائم در صدف گوهر نباشد قنیمت دان و میخور در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد ایا پرلل کرده جام زرین ببخشاور کسی کش زر نباشد بیا ای شیخ و از خمخانه ما شراوی خرک در کوسر نباشد بشوی و راغ اگر هم در سمائی که علم عشق در دفتر نباشد زمن بنیوش و دل در شاهدی بند که حسنش بسته زیور نباشد شراوی بی خمارم بخشیارم که با هیچ درد سر نباشد من از جان بنده سلطان او اگر چه یادش از چاکر نباشد به تاج آلم آرایش که خورشید چون این زیبنده افسر نباشد کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که هیچش لوت در گوهر نباشد